أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيومين باب از ابو بعده مفرد باب و من وصل رحمه او فجاهلیه ثم عشاء. مقصد و الله رحمه الله از که آیا اعمال خیری که شخص قبل از اسلامش انجام داده بعد از مسلمان شدنش برایش حساب میشه یا نه؟ یعنی روز آخرت در میزان حسناتش گذاشته میشه یا نه؟ در ترازی اعمال نیکش گذاشته میشه یا نه؟ سلیم رحمی انجام داده خوبی کرده به والدینش وایل آخر. پنجاه و یکمین حدیث حدیث حکیم و حزام الله عنه. انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم رايت امور كنت اتحنث بها در رسول الله صلى الله عليه وسلم اموري من از باب تقرب انجام میدادم تقرب به الله جل وعلا حنس در اس گناه و مقصود جا تحنث بها القا يا دوري از گناه رايت امور كنت اتحنث بها في الجاهليه كرهائي که من از كارهایی ني كه انجام میدادم و از كارهایی از بدی پرهیز میکردم و کار خوب به زای اون انجام میدادم چی بود اونا؟ صله رحم و عتاقه و کردن بردگان و صدقه، صدقه دادن. فهلی فيها اجر؟ اینا پاداشاش برای من نوشته میشه. رو دارم روز قیامت یا برای من حساب میشه؟ قال حکیمون، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اسلمت على ما سلف من خیر، اسلمت؟ اسلام وردی همراه با اون چیزی که در گذشته انجام دادی. معسلفه این گذشته از امور خیری که انجام دادی از امور از اون عبادت های نیک و اون عملی که به متقربه به الله بودی با اون اونها برات حساب میشه. اصلمت عل معسلفه هر خیری که قبل از اسلامت انجام دادی اونها در ترازی اعمال نیکت گذاشته میشه روز قیامت ظاهر این حدیث اینه. بعضا اعتراض وارد کردن که چطوره چرا پس الله گفته اعمال کفار حبان منطاه هست الله در قرآن گفته که اعمالشون حساب نمیشه چطور ما این حساب شد چه خلبن رحم الله مفصل فیرامن این حدیث صحبت داره بعد شاگردش حسن هم مفصل این اختلافات رو نق میکنه خلاصش اینی که اون چیزی که الله یاد میکنه از اینکه اعمال مشتکن و کفار حبان منطاه هست در صورتی که بدون طوربه بمیرن. تو بنکنن و بمیرن اینجا هست که اون شخص اعمالش هباء المنثوره است اعمالش هباء المنثوره است اعمالش پوچه براش حساب نمیشه الله جل و علا در قران میگوید ولقد اوحی الیک و من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكنن من الخاسرين إحباط مشي. تو این جمله زیانکاران خواهی شد عملت احباط میشه عملت با مردنت در سلتك که تو الله جل و مشرک بشید با شرکت اعمالت نابود میشه دیگه اعمال نیکی نخواهید داشت شیخ الحبان رحم الله میگه خب این آیه دلالت بر این داد که اون شخصی که مثلا مسلمانه حج را انجام میده حالا بحث فقهی و ارتباطش با این مسئله اصلا تعالی ما اسلفته من خیر شخصی مسلمان میشه حج میره سپس مرتد میشه الان اعمالش چیه باطل دوباره مسلمان میشه تا بلزی که بمیره الان آیا این شخص حج دیگری ای به گردنش هست اون حج قبلی برایش حساب یا نه حج اسلامش انجام داده یا نه صحیح بله اسلمت على ما اسلفته من خیر حج مقبوله حالا مشرکی حج را انجام داده در زمان شرکش خیر چرا چون حج را بر اساس شریعت محمدی انجام نداده باید بیاد دوباره بر اساس شریعت ما اون حج را اداه بکنت ازش پسی رفته بشه الله جل وعلا در قرآن بگی و من یرتد من کم عن دینهی فیمت و هو کافر فیمت و هو کافر با کف بمیره فا اولئیک حبطت اعمالهم اینها هستن که اعمالشون نابوده پس مقید شد به با شرک و کف از دنیا رفتن بعد کناره هم دیگه بزاریم فا اولئیک حبطت اعمالهم في الدنیا والآخرة و اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون شيخ الله بيجيه. كذا صحيح وإذا تبين هذا فلا منافاه بينه وبين الحديث المتقدم اي الصحيحه برقم كذا واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا لان المراد به الكافر الذي سبق في علمنا انه يموت كافرا كفرك برين دنيا عمل نيكي انجام ميده اگر با كفر از دنيا بره شلون الله ميدونه كبا كفر از دنيا ميره قاداش شو در اين دنيا ميدي. بدليل قوله في آخره حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها توينك روز القيامات واختكيميات ديگار حسني ندوشت وشهر عمل نيكي ندوشت بعدي. قال المؤلف رحمه الله باب صلات الرحم المشرك والهدية حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدت عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فآى عمر حل تنسي أراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوا فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلل فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبين من, دا بينه وبين من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه سی <سيوية> و باب از ابواب کتاب بعد مفرد من بخاری باب و صلت و ذر بحث تواصل و ارتباط با رحم با ارحام مشرك و هدیه دادن این حدیث کامنات شرح دادن این حدیث ابن عمر رضی الله عنهما در مورد اون فارچه ای که رسول صلی هدیه میده به عنوان خطاب بعد مرون خطاب میگه خوب این خودت برای خودت نپسندیدی چطور من بپوشم گفت که ندادم که تو دادم که بفروشی یا به کسی بدی که بپوشه برای مرد درست بود برای مرد درست نیست برای زن درسته بعد عمرم الخطا برای برادرش از مادرش که مشرک بود در مکه برای اومی فرسته از باب هدیه بحث سلی رحمه بحث قرابته و ارتباط با انها و هدیه دادن درست درست نیست درسته و این حدیث هم دلیل بر این مطلب اما باب بعدی سی و دومین باب باب تعلم من انسابكم ما تصلون به ارحمت إنسان بعد أز نسابكواش بدونه تا إنك سليل رحمته شو بجاب ياره حديث جبر بن مطعم رم ياره كم جياد شنيدهم عمرهم الخطاب رضي الله عن بر برم جياد تعلموا أنسابكم إن قسمت ناس الحديث قرر تعلموا أنسابكم وثم صلوا رحمكم إن جامرهم إن قسمت هذا الحديث وهم الله باللفظ ديجار ومدح إن بجريد تا سليل رحمته ثم صلوا رحمكم سفاس سلايم رحمت رب جاب ياريد. والله انه ليكون بين رجل و بين اخي قسم یاد كن عقته. والله بين شخص برادرش كدريتهاش. ولو يعلم الذي بينه و بينه من داخله دا الرحم. ما گفته نه تداخل در رحم دوران به هم دگر نازکان قرابت دوران. لاؤ ذلك عن انتهاك. عزلش پاک میشه ساده میشه شکل گوزاش بكنن. فوق زر از اون شخص. يعني اون ارتباط و خشاوندگی سبب میشه که دست بکشه از ظلمش، دست بکشه از تعدید بر حقوقش. یک از دوستان میگه که یک بنده خدایی دندونگرد بود. دندونگردی میدونی اصلاح برچی که فلان تاجر مثلا دندونگرد یعنی هر چی چک و چونه بزنی باهاش 1000 تومان برات کم نمیکنه. خشکه در معامله. کنایه است. میگه این بنده خدا اصلا به هیچ کس 1000 هم کم نمیگاره. نه یک شهر دیگه مغازه داشت. بل خب اصالتا اهل شهر دیگه بود یعنی شهر ما بود میگه منم میدونستم که این شهر تعصب و شهرش داره از شهر ما بود همشهری ما بود و نمیدونست که منم همشهریشم من پسر خاله مادرشم رفتم بعد گفتم حاجی شما کجایی گفت که من فلان گفت که خب فلانجا رو کی میشناسی یکی از دایی هامو یاد کرد گفتم فلانی فلانی که آدم نیست فلانی که اینطوری میگه از باب اذیتش گفتم یه کم باش بحث بکنم کم داغش بکنم بعد از کلی از حرفو بعد گفت که هاجی این شخص دایی من ها میگه جدی گفت که بله جدی گفت که بهش اسپری میکنم این طور بعد میگه فاکتور رو در ورد نوشته بود مثلا این اجناس این اینقدر خریدی اینقدر تخفیف زیر فاکتور الان این مسائل این چمی بیش این قضیه رو یک از دو ساعت بازگو میکرد خب چه چی چیز سبب شد که این شخص بیاد این شخصی که دندان بود هیچ کسی کم تو موامله بیاد تخفیف بهش بده اجناسی که خریده ترابتش هر کسی به اصلش تعصب داره هر کسی به اصلش تعصب داره نمیشه ناخون رو از گوش جدا کرد فرزنده به پدر مادرش هرچقدر اون پدر مادرش بد باشه اون اموهاش اون امهاش انسانه این طبیعت سرشته سرش اسلام نیمده این سرش رو از ما جدا بکنه اسلام چه کارش بکنه محکمش بکنه ولی به دور از ظلم متعدی به حقوق دیگران، اومدین قرابت رو حفظ بکنه، نه یمده این قرابت رو از بین ببره، ولی حد و حدود براش مشخص کرده، وقتی که انصار جمع میشن و مهاجرین، اون میگه ای مهاجرین بلند، اون میگه ای انصار بلند، اومدان که درگیر بشن با هم، دیگه چی میگه رسول الله صلی الله علیه و آله؟ نگوشش رو می کنه، میگه ابدال جاهلیه این دعوای جاهلیت، این از شعارهای جاهلیت ای انصار، ای قبیله فلانی، ای, فلان ای قبیله فلانی، ای ای فلان. مسلم اینه اینا این که ای اسلام مونن. تفاخر حرام فخ فروشی کردن بر نسب خودش کسی بیاد بروخ کسی دیگه بده نسبش من عربم اون من عجبا من فرصم من ترکه حرام نازل الله فرقی نداره بین عجمی و عربی ان اکرمکم عند الله اتقاكم مکرم ترین الله متقی الله نگاه جسم و شکل قیافه نمی کنه نگاه چی میکنه نگاه قلب های ما ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اساتكم لكن ينظر الى قلوبكم قلواتون میکنه نگاه ایمان تون میکنه در اسلام فرقی میان عجمی و عربی نیست بلال حبشیه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه فرق و دیگر اصحاب و یاران نداره اینو باید ما مد نظرم تعصب در اینجا مذموم از باب تفاخر و از باب فخفروشی کردن ممنوع حرام دعوای جاهلیته خصوصا وقتی که سبب بشه که تو قومی را بیای تحقیر بکنی قومی یا بیای تحقیر بکنی به مذمت بشمورین یا به نسبت کشورشون مصری ها فلانن عراقی ها فلانن شیخ مشقب محسن عباس سوال شد این اصطلاح که میگن مصری ها فلانن آیا غیبت محسوب میشه گفت بله غیبت کل قوم مصر صد میلیون آدمی کل مصر رو تو شامل کردی صد میلیون غیبت شو چند نفری دوز باشن صد میلیون که دیگه نیستن دغدغه زدی افترا بس اینو باید انسان همیشه شجله ور داشته باشه و دقت بکنه در اون تعبیرات در اون اصطلاحاتی که به کار میبره در اون حرفایی که می زنه فخ فروشی نباشه تعصب پرستی نباشه حسن این قضیه نج پرستی که خیلی ها بهش دامن میزنه ما فرزندان کوروش هستیم و کوروش فلانه و ما آرمان پارسیان داریم و داشتیم و نمیدونم خدمت تاریخچه شاهنشاهی 2500 ساله و آخرش به کی برمیگرده؟ با آدم، و آدم من تراب، آدم همم از خاکی، هممون از خاکی، جنس شما خاک دیگه هست، ما خاک دیگری، همه از خاکی، و به خاک هم برمیگردیم، به چی مون باید فرخوروشی بکنیم؟ به خاکمون مون؟ به خاک ازش آفریده شدیم؟ بله، حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله، حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعد بن عمر انه سمع اباهو يحدث عن ابن عباس انه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعودت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها فنجو من حديث أحاديث كتابة المفرد من بخاري قفتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظو انساب اکم گفتیم نس حدیثه تصلو ارحام اکم و مرمال من بر سر منبر گفته اینجا ابن عباس میگه نس حدیثه با الفاظ مختلفی ربادت شده به همین معنا. انسان باید نسبش رو بدونه و هدف از این دونسته نسب چیه تصلوا ارحام تو تا اینکه سلی رحم به جا بیاری هدف اینه نفخ درشی کردن افتخار کردن همه از فرزندان آدمی و آدم هم از رفت. فرقی بین سیاه و قرمز و سفید و سبزش نیست همه از خاکن و فرزندان آدم انصاب را انسان باید یاد بگیر نصب خودش را را دیاد بگیره تا اینکه سلح رحمشو به جا بیاره فا اینه لاب بعده بررحمی دقر و پسر عموی دایی مادرم پسر خاله عموی پدرم بعیده ولیکن چون با همدیگه داد و ستت داریم رفت و آمد داریم همدیگه رو به جا میاریم فرقی با اون پسر عمویمن نداره بعیده پسر عموی خاله مادرم نزدیک شده مثل برادرم مثل پسر خالم پسر امو. فرقی نداره با من چرا به خاطر اون ارتباط چون همدیگه رو به جا آوردیم دیگه بعدی وجود نداره دیگه دوری بین ما نیست خودمو رو از از همدیگه میبینی و اذا کانت بعیده و این كانت بعر هر چنکه دور باشه ولا قربا بیها اذا پسر خاله من در کشور دیگر زندگی میکنه نه او ما رو به جا میاره و نه من او رو به جا میارم قریب یا بعید دور یا نزدیکی دوره. هر چن که نزدیک از لحاظ نسبی و من تو یک شهرین تو یک محلیین هم دیگه رو نمیبینین نمیشناسین به جا نمیاریم نزدیکم نسبا ولی که بعیدیم قلبا ولا قرب بها اذا بعدت و كانت قريبه هر چن که نزدیک باشه و کل رحماتیه اتیه يوم القیامه بر حذر باشید بدونید رحم اونجا میاد برای گواه دادن. رحم سخن میگه همونطور که وقتی الله او را آفرید او را به سخن و نطق در ورد روز قیامتم الله بهش نطق میده. میاد. این ریشه من از مادری و پدری ریشه من. رحم من که من بهش وسلم من ازش مشتق شدم از بالا و پایین از بالا که خودتون دیگه میدونید. اموها و داییها و اموها و خاله ها و, و مافوق و پایین فرزندان و نواد و همه اینها شامل میشن تشهد له بالصلاه این رحم این اصل ریشه من میاد گواه میده کجا من قطع کردم کجا قطع شده این ریشه ها کامل میاد روز قیامت و گله داره حرف و سخن داره ان کان وصلها تشهد له بالصلاه ان کان وصلها گواه بده این ارتباط با بقرار کرده گواه بر این عبادت درش قبول شده و علیه بقطیعه ان کان قطعها مردود اگر مرد قبول واقع نشد این عبادت ازش چرا؟ چون قط کرده ارتباط و رحمش قط کرده و اومدن این رحم حقیقیه و گلایش هم حقیقیه و گواه بر شخص حقیقت داره مجازی ما نداریم نه قال المؤلف رحمه الله باب مولا القوم من انفسهم حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني اسماعيل بن أبي عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذلك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس این قریشا اهل امانه من بغا بهم قال زهیر اظنو قال العواتر كبه الله لی من خریه يقول ذلك ثلاث مرات سی و سوامین باب از اباب کتاب در باب و مولا القوم من انفوسه مولا القوم اون برده ای که آزاد بشه یه قومی بیان آزادشو کنه از خودشونه این میشه جز موالی موالی احکامی داره که تو کتاب فقیر بحثش میشه اینجا بحث گفتیم بحث فقیر رو ما نداریم ما بحث موزه رو داریم و اون حدیث و معناش عبرتی که در اون حدیثه فقط اینا داریم بررسی میکنیم و گذرا از این حدیث داریم مرور میکنیم و پنجومین حدیث حدیث رفای ابن رافع رضی الله عنه آخر این آخرین حدیث در بحث سلی رحم دیگه بعد میاد رو بحث همسایه میاد بحث فرزندان میاد بحث حالا دخترش بحث رحم و الی آخر خب بحث سلی رحمه بر روالدین. الان این با حديث حدیث خاتمه مییاد. وفاء الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه "اجمع علی قومك قومه رجامک قريش فجمعهم، جمعشون میکنه. در کجا؟ این در مکه رخ داد یا در مدینه؟ در مدینه مسلمن. چرا چون بعده انصار میگن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه الله عنه گفته که قریش فلما حضر باب النبي دخل عليه عمر فقال: "قد جمعت لك قومي مياد نازل رسول وقتی که حاضر شدند جلوی در منزل رسول سلام بعد اومد عمر رضی الله عنه اجازه گرفت بعد میگه انصار این شنیدن که قریش جمع شدن قوم عمر جمع شدن انصار از اونها وقتی که فهمیدن وحی برای قریش نازل شده اومدن به گوش دادن و دیدن که چی شده الله رستول سلام قمش جمع کرده چون الله سلام از خودشون بود دیگه از بود میگه ما انصار اومدیم که ببینیم این مهاجرین که الان وحی براشون نازل شده چیه و خرج النبي صلی الله و فقام بین اظهرهم پس اتونها راست راستان بلند شد قوم جم شدن رس راستان بلند میشه فقاله حلفیکن من غیریکن کسی هست از خودتون نباشه قالو نعم بله هست کسانی که از ما نیسته. کیان هم همپیمان های ما فی هم همپیمان ماست و ابن اختنا پرزندان خواهرامون و موالینا برده هایی که ما آزاد کردیم الا این حرف یا درست یا اشتباهه یک مسئله قاعده کلی ما در قواد فقی مفصل مفصل من شرحش دادم در شرح قواد فقی که این جاها ما بهش نیازمند میشیم ونم این قاعده که لا یجوز ترک البیان عن وقت الحاجه اینجا یک مسئله رخ میده صحابه میگن که مهاجرین میگن که همپیمان ما و فرزندان خواهرامون از ما نیستن و موالی ما یا این حرف الان درست یا حرف اشتباهه. اگر رسول الله سلام، حرفشون اشتباه باشه، ساکت بشه، یعنی چی؟ یعنی کارشون درسته، اصلا کارشون اشتباه نبوده. یعنی تاییده، تقریره. به خاطر همین میگن تاخیر البیانی عن وقت الحاجت لا یجوز اینجا وقت نیازه، اینجا اینجا برداشت میشه که حرف اونها درسته. سکوت رسول یعنی تایید، یعنی بله فرزندان خواهرامون دیگه از ما نیستن. نسبشون به ما واسه نیست، دیگه رحم ما نیست. این معنیش میرسونه دیگه کسانی هستن که از شما نواشن گفتن بله اینها رسول الله صلی الله علیه و میاد انکار میکنه ولی حرفش رو میکنه تایید میکنه میگه نه اینها از شما جدا نیستن یه چیز دیگه میگه اینها تو قانون جاهلیت بوده در جاهلیت بله حالا میاد ان شاء الله بعدی که رفت داره ببین به زنب یک چشم حقیر نگاه میکردن حتی الان والله وجو مسودا روش سیاه شد اگر کسی هم احدهم بالانثا اگر بشارات داده میشد به دختر حتی الان این جاهلیت در ما هم هست پدر ناراحت هست پسرش تو فقط بلد دختر بسازی انگار که دست نه که دختر داره می سازه. این جدا دارم میگم یک از دوستام اومد گفت که چه کار کنم پدر بعد دستم ناراحت گفتم چرا گفت هیچ خانمم اولی رو دختر زاییده الا دومی هم دختره پدرم ناراحت عصبانی <تصفح> این هست هم تو زنش هم, هم تو مردش ولی که این که انسان ناراحت بشه که الله چرا قسمتش کرده که دختر داشته باشه این یک شخصی می간다 نزد امام احمد بن حنبل میگه امام نوه تا یا ده تا دختر دارم یادم نیست دقیق عددش همین بین 9 یا 10 بود ناراحت بود بعد از باب و از دلداری احمد بن حنبل بهش میگه میگه نمی دونی که پیامبران پدران دختران بودن الا بیا اباء البنات نمی دونی پدران دختران بودن لوط علیه السلام دو تا دختر داشت یاد نشده که از پیامبران نه که همه پیامبران از پیامبران کسانی بودن که پدران و دختر بودن یعنی فرزند پسر داده نشودن مریم دختر عمران پس انسان نباید قسمتی که الله صلاح اون بنده شو نباید بر خودش به شماره، بدی شماره. الله خیرتو خواسته، الله خیریاتتو میدونه تو خیریات خودتو نمیدونی خب اینجا پس رسول الله صلی الله علیه و این مسئله رو تصحیح میکنه میگه حلیف و مننا اون کسی که همپیمان ماست از ماست ما با ما همپیمان شده تن به تن با ما جنگه عهد و پیمان داره و ابن اختنا من فرزند خواهرمون از ماست برخلاف جاهلیت از خودشون نمیدونستن و موالینا من اون کسی که مولاس آزاد شده برده که دیگه میان و عنوان یک برادر با ما زندگی میکنه حتی ارس و از هم دیگه میبرن و انتم تسمعون شما هم میشنمید این اولیائی منکم المتقون اولیائی منکم یعنی چه اولیاء الدنیا ملعونتون ملعون ما فيها، الا ذكر الله وما, والاه أو عالماً أو وما والاه ما او عالم او متعلما. و جشاهد و ما واله. دنیا ملعونی ما هر چیزی که داری دنیاست. مگر ذكر الله هر چی کیاده الله داریش باشه؟ و ما واله. یعنی چی ما واله؟ ای و ما الله. بلاایت نی محبت. بلاایت نی چی؟ محبت دستشتن. ای و ما و الله الله ای و الله. هر چیزی که الله دستش. انها ملعونی است. ملعون. اون چیزی که الله دستش داریش باشه. پست. و چیزی که الله دوست نداشته باشه خب الان بیم این معنی ولی را گفتیم ان اولیاء منکم المتقون دوستداران من کیان متقین هستیم این کنتم اولائک فذاک این دوستداران این هواداران اگر متقی هستن بله آری ازمان فذاک اینجا شیخ خوندن فذالک و الا فانظرو و الا فانظرو نگاه چی بکنند نگاه کنید نگاه چی؟ نگاه آخر عاقبتشو نگاه آخر عاقبت لا یتن ناسو بالاعمال یوم القیامة و بالاثقال بالأثقال نیاید روز قیامت با اون اعمال اعمال بد و ناشایستی که سنگینی بکنه فیعراض عنکم بس شما اعراض بشه روی گردانی بشه در اون روز کسی به دادتون نرسه تنها بشید با اون اعمال زشت و ناشایستتون پس با آخر عاقبتتون فکر بکنید این نسبتون به دردتون نمیخوره عملتون هست که در مقابل اون خاص میشید من بطابه عمله لم يصرح به نسبه کسی که عملش به درد بخوره نشه نسبش به دردش نمیخوره ای قرش نسبتون به دردتون نمیخوره نگاه بکنید فهم دورو لا یات الناس بالاعمال یوم القیامه نه مردم از شما پیشه بگیرن شما نیایید در روز قیامت با خربال و معسیات و ظلم و ستام و بدی هیو عرض عنكم و اونجا با شما اینچینی تعامل بشه که در اونجا مترود واقع بشید اونجا از شما روی گردانی بشه تم مناده فقاس پس رسول الله صلیم صدا میزنه. یا ایوه الناس ای مردم یا ایوه الناس اونجا انصار اومدن دارن گوش میدن نگاه میکنن یا ایوه الناس و رفع يديه اضا على روس قرش شما قرش کاری با انصار که از دور نشستن گوش میدن و می بینن نداره. ای شما قریش ایوها الناس دوباره این قریشا اهل امانه شما قریشی ها چی هستید؟ اهل امانتید شیخالبانی ایک توسیه داره به اونهایی که مذهب سلف را ترجیح دادن بر مذهب تقلید تقلید یک مذهب به طور تعیید و سلفیت که یکی از این مذاهب را در یک مسئله شاید برتر بر دیگری میدونه ترجیح بده این اینجا امام احمد قولش دقیقتر و راجح و خاطر دلیل صحیحی که داره این اصل سلفیت یا اصل سلفی نگریه با توجه به اقوال علماء اون اجتهاد درست و صحیح تر را انتخاب میکنه شیخ حلوانی رحمه الله میگه که دعوت حق دعوت سلف سنگینه بر مردم چون مردم عادت کردن مقلد باشد این میگه من مذهبم شافعیه این میگه من مذهب حنفیه میگه من مالکی هم اونها حنبلیان به ذقیر لهم التبع ما انزل قالوا بل نتبع ما الفین عليه اوبا اصبر انك اصلا تعصب اصلش داشته باشه تو بخوای دعوت حق بری که تا تعصب دلیل داشته باشید نه به نسبتون نه به اون چیزی که اوبا اجزاتتون برش بودن میگه این تلخیه سنگینی بر قلب اونها میگه ای سلفی ها این دعوتی که سنگینه دیگه با اخلاقت سنگین ترش نکو قایشان این دعوت خودش سنگین هست بر مردم که بپذیرنش تو دیگه سنگین ترش نکن با تنخویی و با پرخاش و با اخلاق بدت. اینی که باید دقت بکنی. فکر نکنید خودتون تنهایی. محسوبید رو جمع به پای جمع نوشته میشه. یقیه تک تک رو فردا میگیرن که ها فلان جا یکی از شما ها فلان خطایی کرد. همه الان شدن متهم. اینو داره شد قطع از باور توصیه دارم میگم همونطور که در این حدیث داری که رسول الله صلی الله علیه و سلم قریش اهل آمانتیت شماي قریش انهایی که رهرو و راه السلفنم چیان اهل آمانت ان انعرض من آمانت علي السماوات و الأرضي و الجوال فابينا أن يحمل لها منها وحملها الإنسان ممود دعيم که و بحيم كبير سخنان إلهيم بررسول الله صل الله عليه و سلم باون حدیث ما که مدعی شدیم حاملین وحش شدیم از قرآن و سنت و ادعای پیروی از قرآن و سنت رو داریم باید هم اعتقادمون صحیح باشه هم رفتارمون این آداب را بیخونید برای همین هدف خوندن این کتاب هم همینه فکر نکنید فقط سلفیات در اعتقاد این که الله وانه عرشه اولین چیزی که اینجا شروع میکنه ما بخاری بر والدین بعد سلح رحم پنجاه و پنج حدیث پنجاه و تا نه یک نه دو 55 تا حدیث همه در تصحیح اخلاق و رفتار چند تا حدیث 55 تا اینجای ما بخاری میاره با الفاظ مختلف معانی مختلف یعنی این قد این مسئله مهمه اخلاق رفتار تعامل مایی که مدعی هستیم خودمون رو اصلاح بکنیم یکی میاد یک کاری رو میکنه میگن که جاهل سنگی را تو چاه میندازه 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن جاهل سنگی تو چه میندازه 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن خودمون رو تنها حساب نکنیم یک اشتباه ما پای جنب نوشته میشه خصوصا الان که ما زیر ذربی نگاه میشیم که از ما چه خطایی سر میزنه رصد میکنن که ما چه اشتباهی مرتکب میشیم رو الفاظ دقت میکنن من یک کلیپ ندارم بیش از هزار تا درس هست از من از اصول فقه عقیده با ذربی نگاه میشه روی این درس ها. که کجا این زبانه لغزیده کجا این زبان کج رفته کجا یک لغزشی ازش رخ داده دنبالن یه خطای سر بزنه از ما ما این که باید دقیق باشیم ما این که باید دقت بکنیم در الفاظمون در رفتارمون همونطور گفتیم این دعوت خودش سنگین هست دیگه با رفتار و تعامل بدمون سنگین ترش نکنیم قرش اهل امانتا ما هم باید اهل امانت باشیم امانت دار باشیم امین باشیم امین بودن در مراعات حقوق پایمال نشه امانت دار دین باشید امانت دار دین دین معنای شمولی داره. نه یک دری را بگیری درهای دیگر را رهاش کنید. من بقای بهم قرظه از آن نوع عواثر کسی بانها در بیفته، بونها زول بکنه. کب به الله لمن خری سه بار تکرار میکنه. کسی بونها در بیفته یا با کسی بونها زول بکنه. عثره اصل عثره اون تلیی هست که برای شکار شیر گور اینها گذاشته میشه. یا اون قواعدی که میکنن برای اینکه شیری چیزی توش بیفته. کسی بخواد حفره ای بکنه این مکری، نیرنگی خود با آن زل می بکنه با آن زل می بکنه کب با الله لمن خری. او را الله با سر وارد جهنم میکنه. او را با سر وارد چی میکنه؟ وارد جهنم آتش و عذاب الهی با صورت به جهنم انداخته میشه این حکوته کسی بخواد ظلم بکنه. حالا زل اینجا رسلات تا سه بار تکید میکنه به خاطر خشدار دادن و تذکر دادن و یادآوری کردن. درسو از این حادثه زیاده از جمله این نصیحتای رسول الله صلی الله علیه و آله تنها به قریش نبوده به همه اقوام بوده انصارم اونجا میشنیدن از باب تأکید بر قومش قومش جنب رسول الله صلی الله علیه و آله جمع میکنه که تأکیدی بیشتری داشته باشه بر اون حرفا و سخنانی که به طور عموم گفته میشه انسانه جایی پند و اندرزی نصیحتی سفارش رو علل خصوص اینجا من به شما میگم توی خونه هم به همسران و فرزندانم هم بازم یادآوری میکنم اونجا شادی یاداوری مو باشه تو اینجا اینجا یه بار میگم میرم اونجا هر روز میگم اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب تاکید قوم رو جمع میکنه و اون سخنانی که به طور عموم میگفته اینجا حلل خصوص میگه خصوصا تذکر و یاداوری بر اینکه انسان از نسبش استفاده بکنه برای سله رحمش نه برای افتخارروشی و دنبال عمل کردن باشه و تصیح عملش و بحث تربیت اخلاقی که یک دعوتگر باید روش حریص باشه همونطور که به تصحیح اعتقاد مردم میپردازه همونطور که به فقه و دیگر علوم میپردازه باید به اخلاقم بپردازه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت میداد و به خاطر این مسئله اخلاقی قومش را جمع میکنه که این صحبت علو خصوص با اونها داشته باشه پس مسئله خیلی بزرگیه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد محمد وعلى